سعید، رامین کجاست؟ تو میدانی؟ رامین به هتل آزادی رفت. پدر و مادر او به تهران آمدند. آنها کی آمدند؟ امروز آمدند. چون پدر رامین مریض است. او بیماری قلبی دارد. متاسفم. میدانی در کدام بیمارستان عمل جراحی می کند؟ او به بیمارستان دی می رود و آنجا عمل جراحی می کند کی عمل می کند؟ نمیدانم فکر می کنم هفته بعد من حتما به ایادت پدر رامین می رویم. من هم به بیمارستان می آیم.